روی تختی کوچک درون اتاقکی نقلی سوار بر کشتی از خواب بیدار شد. از آنجا میدانست توی کشتی است که زمین زیر پایش تکان تکان میخورد خورد. در واقع همین تکان با اینکه آرام بودند او را از خواب بیدار کرده بودند. اتاقک خالی و ابتدایی بود. پلیور پشمی زمخت و زیر شلواری به تن داشت. پتو را از روی خود کنار زد و متوجه شد که سردرد دارد دهانش آنقدر خشک بود که حس میکرد گونه هایش از داخل روی دندانهایش کشیده میشوند. از عمق سینه ای محکم کرد و احساس کرد از نظر بدنی فاصله بسیاری با ورزشکارای المپیکی دارد. انگشتانش بوی توتون میدادند. روی تخت نشست و زنی موبور و خوشپرنگه و آفتاب سوخته را دید که روی تختی دیگر نشسته و به او خیره شده است. گماران نورا. نورا لبخند زد. امیدوار بود در این زندگی، از او انتظار نرود زبان اسکاندیناوی خاصی را که زن به آن صحبت کرده بود بلد باشد. صبح خیر. بطری نیمه خالی ودکا و لیوانی را روی زمین کدار تخت زندید. دید. روی سندوچه بین دو تخت تقویمی با طرح های مختلف زده بودند که روی ماه آوریل قرار داشت و سی اسپرینگر اسپانیگل را می داد. سه کتاب روی سندوچه همه به زبان انگلیسی بودند. روی آن یکی که به زن نزدیک بود نوشته شده بود، اصول سازوکاری یخچال ها و دوتای سمت نورا، راهنمای طبیعت طبیعتگردی در قطب شمال و دیگری نسخه کلاسیک نشر پنگوان از اسطوره ولسونگ، استوره, استوره نورسیسی گرد اجده ها کش. نورا متوجه چیز دیگری هم شد. سرد بود، از آن سرماه اساسی، سرمایی که میتواند پوست را بسوزاند. انگوشت های دست و پا را درد بیاورد و گونه ها را خشک کند. آن هم حتی وقتی داخل اتاق هستی، چندین لایه لباس زیر گرم کننده پوشیده ای، پولیور به تنداری و دو بخاری برقی روشن به طرفت قرار گرفته است. هر نفسی که نورا بیرون می‌داد، در هوا به شکل ابری از بخار در زن به زبان انگلیسی و با لحجه غلیز گفت، چرا اینجایی جایی نورا؟ سوال سختی بود مخصوصاً وقتی که ندانی منظور از اینجا کجاست واسه پرسیدن سوالهای فلسفی یکم زود نیست نورا با نگرانی خندید پشت پنجره اتاقک دیواری یخی را دید که از دریا بیرون آمده بود یا نزدیک قطب شمال بود یا قطب جنوب هرچه بود جایی در دور دست ها بود زن هنوز خیره به او نگاه می کرد نورا اصلاً نمیدانست با هم دیگر دوست هستند یا نه زن سرسخت، روک و خاکی به نظر می میرسید اما احتمالا شخصیت جالبی هم داشت. منظورم فلسفی نیست. حتی سؤالم این نیست که چی باعث شده تحقیقات یخچال شناسی بکنی. البته ممکنه همین باشه. منظورم اینه که چرا تصمیم گرفتی تا جای ممکن از تمدن و آدم ها دور بشی؟ هیچ وقت این رو به هم نگفتی. نورا گفت: نمیدونم. از سرما خوشم میاد. هیچکس از سرما خوشش نمیاد مگه اینکه که مازوخیست باشی؟ درست میگفت نورا دست دراز کرد پلیور پایین تختش را برداشت و آن را روی پلیوری که به داشت پوشید. در همین حین گردن آویز پلاستیک پوش را روی زمین کنار بطری ودکا دید اینگرید اسکیربیک پروفسور علوم زمین شناسی مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی نمیدونم اینگرید فکر کنم فقط از ها خوشم میاد نمیدونم اینگرید فکر کنم فقط از ها خوشم میاد می‌خوام درکشون کنم و بفهمم چرا دارن ذوب میشن از حالت بالا رفتن ابروهای اینگرید مشخص بود که نورا جوابی در خور کارشناس شناسی نداده بود نورا به امید فرار از این وضعیت پرسید خودی چی اینگرید آه کشید و با انگشت شست کف دستش را مالید. بعد از مرگ پر دیگه نمیتونستم توی اصلو بمونم. میدونی، دور تا دورم پر بود از آدمهایی جز اونی که میخواستم ببینمش. یه کافه توی دانشگاه بود که با هم می رفتیم. همیشه ساکت پیش هم می نشستیم. ساکت و خوشحال، روزنامه می یا قهوه می خوردیم. دورموندن از این جور جاها سخت بود. آخه با هم دیگه پیاده همه جا رفته بودیم. روح ناآرومش رو توی تک تک خیابونها ها میدیدم. همش سعی می کردم خاطراتش رو از سرم بیرون کنم ولی فایده نداشت. قم و اندوه از دست دادن کسی خیلی بده. اگه بیشتر اونجا می‌موندم دیگه از همه آدمها متنفر می شدم. این وقتی موقعیت تحقیقات توی اسفال بارد بهم هم پیش نهاد شد پیش خودم گفتم آره این موقعیت گیرم اومده که نجاتم بده میخواستم برم جایی که پر هرگز نرفته بوده باشه میخواستم برم جایی که دیگه روحش رو حس نکنم ولی حقیقت اینه که فقط یکم اثر داره میدونی؟ همه جا مثل هم دیگه است و خاطرات هنوز هستن و زندگی هنوز همون گوهیه که بود. نورا به حرفایش گوش کرد. اینگرید با داشت با کسی حرف میزد که به خوبی اما نورا غریبه بود. حس عجیبی داشت. اشتباه بود. نورا به این فکر افتاد که احتمالا سخت ترین بخش شغل جاسوسی هم همین است. احساساتی که مردم به تو نشان میدهند مثل یک سرمایه گذاری اشتباه. حس می کنی داری چیزی را از مردم می انگرید لبخند زد و افکار او را قطع کرد بگذاریم واسه دیشب ممنونم گفتگوی خوبی داشتیم توی این کشتی آدم عوضی زیاده ولی تو عوضی نیستی ممنونم تو هم عوضی نیستی همان موقع بود که نورا برای نخستین بار تو فنگ را دید تفنگی بلند با قنداقی سنگین و قهوهی رنگ که آن سوی اتاقک به دیوار زیر جالباسی تکیه داده شده بود. دیدن توفنگ به طریق نورا را خوشحال کرد و این احساس به او دست داد که اگر نورای یازده ساله آنجا بود به او افتخار می کرد. این طور که به نظر می رسید درگیر یک جور ماجراجویی بود. و و نورا با وجود سردرد و حال بدی که به خاطر نوشیدن شب قبل داشت از راهروی چوبی ساده و بدون تزیینی گذشت و به سالن غذاخوری کوچکی رسید که بوی ترشی ماهی کیلکا میداد چند محقق علمی دیگر هم در سالن نشسته بودند و صبحانه می‌خوردند نورا برای خودش قهوه سیاه و مقداری نان چاودار خشک و بیاد گرفت و نشست دور تا دورشان و آن سوی پنجره ها زیبا ترین ای داشت که نورا در تمام عمرش دیده بود. رزایر یخی مانند صخره های سنگیی که سفید و تمیز شده باشند در میان مه دیده می شدند. نورا هفته نفر دیگر را در سالن غذاخوری شمرد: یازده مرد، شش زن، تنها نشست، اما کمتر از پنج دقیقه بعد، مردی با موهای کوتاه و تاریشی که دو روز دیگر میشد آن را ریشی کامل دانست، پشت میز او نشست. مرد هم مثل بیشتر حاضران اتاق کاپشن به داشت. اما اصلا به او نمی آمد. بیشتر به قیافهش میخورد خورد که باید در سواحل جنوب فرانسه باشد. شلوارکی مارکدار و تیشرت ها کوتاهی صورتی رنگ پوشیده بود. به نورا لبخند زد. نورا سعی کرد این لبخند را برای خودش ترجمه کند و بفهمد چه رابطه ای با هم دیگر دارند. مرد مدتی نورا را تماشا کرد و بعد صندلیش را روی زمین کشید تا روبرویش بنشیند. نورا دنبال گردن آویز او گشت. اما کارت شناسایی به گردن مرد آویزان نبود. نورا نمیدانست که باید اسم او را بداند یا نه. مرد گفت من هوگو هستم. خیال نورا را راحت کرد. تو نورایی درسته؟ آره توی مرکز تحقیقاتی اسفالبارد دیدمت اما هیچوقت سلام علیک نکردیم بگذریم فقط میخواستم بگم مقالت درباره ی یخ یخچال های تپندر رو خوندم و شگفت زده شدم واقعا؟ آره منظورم اینه که همیشه برام جالب بود که چرا فقط اینجا این رفتار رو نشون میدن و نه هیچ جایی دیگه واقعا پدیده عجیبیه. زندگی پر از پدیده های عجیبه. حرف زدن با بقیه وسوسه برانگیز اما خطرناک بود. نورا لبخندی کوچک و معدبانه زد و بعد از پنجره به بیرون خیره شد. جزایر یخی به جزایر واقعی تبدیل شدند. قلههای های تیز و برف پوش شبیه کوه ها یا پستی های ناهموار. نورا می توانست پشت این جزایر همان یخچالی را ببیند که از پنجره ی کش دیده بود. از اینجا بهتر میتوانست اندازش را درک کند هرچند که بخش بالاییش را ابر پنهان کرده بود بخشای دیگرش کاملا از مه بیرون بودند خارق العاده بود همیشه توی تلویزیون یا مجلات یخچالها را به شکل تکی یخی سفید و صاف نشان می‌دهند اما این یخچال مثل کوه‌های واقعی پر از جزئیات ریز بود با رنگهای سیاه و قهوه‌ای و سفید همان سفید هم انواع مختلفی داشت ترکیب وسیعی از رنگهای سفید سفید، سفید آبی، سفید فیروزعی، سفید فیروزعی سفید طلایی سفید نقرعی و سفید بیرنگ با درخشش خیره کنندهشان زنده و بسیار تأثیرگذار به نظر می رسیدند. مطمئنن تأثیر گذار تر از صبحانهشان بود. هوگو گفت، غمنگیزه نه؟ چی؟ این حقیقت که روز هرگز تموم نمیشه از این حرف او احساس تردید و نگرانی به نورا دست داد. از چه نظر؟ هوگو قبل از جواب دادن لحظه ای مکس کرد. گفت، منظورم اینه که از آوریل به بعد همیشه هوا روشنه. گازی به بیسکویت خوشگش زد. مثل یه روز بی و تموم نشدنیه. آره، نمیدونم چرا واسه پنجری اتاقکا پرده نزشدن؟ از وقتی سواری این کشتی شدیم هنوز درست نخوابیدم نورا با سر تایید کرد که میشه از که هوگو خندید خنده خوبی بود با دهان بسته و متمدنانه اصلا آنقدرها هم نمیشد اسمش را خندیدن گذاشت دیشب با اینگرید خیلی نوشیدم ودکا حافظم و دزدیده مطمئنی به خاطر ودکاست چه چی چیز دیگه ای میتونه باشه؟ چشمان هوگو پر از سوال بودند. نورا ناخداغا احساس گناه کرد. نگاهی به انگرید انداخت که داشت قهوه می نوشید و چیزی در لبتابش تایپ می کرد. حالا نورا آرزو می کرد کاش پیش او نشسته بود. هوگو گفت خوب دیشب سومین شبمون بود. از یک شنبه توی مجموع الجزایر سرگردونی. آره یک شنبه بود که از لانگیر راه را هفتدیم. نورا حالتی به چهره گرفت که انگار منظور او را میفهمد. حس می از یک شنبه تا الان اندازه یک سال گذشته. کشتی انگار داشت میچرخید. نورا مجبور شد کمی در سندلیش لم دهد. سال پیش توی ماه آوریل اصلا آب آزاد پیدا نمی شد. اما حالا نگاش کن. انگار داریم توی مدیترانه کشتی رانی نورا سعی کرد لبخندش آرام به نظر برسد. حالا اونقدرام un نه. بگذری. شریدم امروز بدشانسی آوردی. نورا سعی کرد احساسات را از صورتش پاک کند که البته سخت هم نبود. واقعا؟ دیده امروز تویی. مگه نه؟ نورا اصلا نمی دانست منظور او چیست. اما از برق توی چشمانش می ترسید. جواب داد. آره خودمم امروز من دیدبانم چشمان هوگو از شگفتی گشاد شدند یا شاید هم مسخره می کرد فهمیدن حقیقت از چهرش کار سختی بود دیدبان؟ آره نورا واقعا دوست داشت بداند دیدبان دقیقا چه کار می کند اما نمی توانست از او بپرسد هوگو نگاهی سردرگم به او انداخت و گفت خب بون شانس نورا گفت مرسی. به منظره روشن و خیره کننده یخهای قطبی خیره شد که پیش از این فقط در مجله دیده بودشان. اما دیگه هر چالشی هستم. ترخیدن به دور خود یک ساعت بعد نورا بر برپهنه وسیعی از سنگهای برف ایستاده بود البته بیشتر سخری بیرون زده از آب بود تا جزیره جایی آنقدر کوچک و غیر مسکونی که اسم هم نداشت هرچند جزیره بزرگتری را میشد آن سوی آبهای سرد و منجمد دید که اسم ترسناک جزیره خرس ها را رویش گذاشته بودند نورا کنار قایق ایستاده بود نه آن کشتی بزرگی که اسمش نیشتر بود و نورا سبانه اش را داخلش خورده بود چون آن یکی در دریال لنگر انداخته بود. نه، نورا با قایق موتوری کوچکی به اینجا آمده بود که مردی درشت هیکل به اسم رون خیلی ساده آن را تنهایی از آب بیرون کشیده بود. رون اسمی اسکاندیناویایی داشت اما با لهجه بیخیال کرانه غربی آمریکا حرف می‌زد. جلوی پایش یک کوله پشتی زرد شبنما بود. توفنگ وینچستری هم که به دیوار اتاقک تکیه داده شده بود، حالا روی زمین قرار داشت. توفنگ او بود. در این زندگی نورا توفنگ داشت. قابلمه و ملاقی هم کنار توفنگ قرار داشت. توی دست نورا تفنگ دیگری هم بود که البته به اندازه قبلی مرگبار نبود. تپانچهی برای شلیک منور. نورا فهمیده بود چجور دیدبانی باید انجام دهد. در حالی که نه محقق دیگر در این جزیره کوچک عملیات میدانی برای تشخیص آب و هوا انجام میدادند، نورا باید دیدبانی میداد که خیرس های قطبی نزدیک نشوند. ظاهراً این قضیه کاملا جدی بود. اگر خیرس قطبی میدید، اول از همه باید منورش را شلیک میکرد. این کار دو نقش را ایفا میکرد. اول این که خیرس را میترساند و دور میکرد، دوم اینکه که به بقیه نخشه کاملا مطمئنی نبود. به هر حال انسانها منابع منابع پروتئینی خوشمزهی بودند و خرسها هم خیلی نمی ترسیدند. مخصوصاً در سالهای اخیر که محل زندگیشان را از دست داده بودند و منابع غذایی کمتری گیر می آوردند. این آنها را از همیشه آسیب پذیرتر و همچنین به اجبار خطر پذیرتر کرده بود. مرد بیریشی به نام پیتر که تون صدایش بسیار بالا بود و چهره ای با زاویه تیز داشت، رهبر گروه عملیات میدانی بود و گفت به محض اینکه مرور منور و شلی کردی با ملاقه به قابلمه بکوب، تونتون و وحشیانه، جیغم بزن، شنبایی خرسای قطبی حساسه، مثل گربن، نوت درصد مواقع سر و صدا اونا رو میترسونه و فراری میده، ده درصد باقی مونده چی میشه؟ با سر به توفنگ اشاره کرد. میکشیش قبل از اینکه اون تو رو بکشه. نورا تنها کسی نبود که تفنگ داشت. همه ایشان تفنگ داشتند. در واقع ها همگی مسلح بودند. پس از این حرف پیتر خندید و اینگرید با دست روی کمر نورا زد. اینگرید در حالی که با صدای خِس‌خِس مانند گفت: <تصفيق> واقعاً امیدوارم امروز خورده نشی. درم برات تای میشه. البته اگه توی عادت ماهان نباشی مشکلی برات پیش نمیاد یا خدا چی؟ از فاصله یه میتونن بوی خون رو حس کنن نفر دیگر با صدای گنگ و مبهم برایش آرزوی موفقیت کرد اما چنان خودش را کاملا پوشانده بود که نورا حتی اگر هم میشناختش آن لحظه نمیفهمید کیست پیتر گفت پنج ساعت دیگه برمی گردیم. <تصفيق> دوباره خندید. نورا با شنیدن خندش امیدوار شد که این حرفش شوخی بوده باشد. دور خودت چرخ و قدم بزن تا گرم بمونی. بعد در مسیر سنگلاخی دور و میان مه ناپدید شدند و تنهایش گذاشتند. به مدت یک ساعت هیچ اتفاقی نیفتاد. نورا مدتی در دایره قدم زد و از یک پاروی دیگری پرید. مه کمی رقیق تر شد. نورا به منظره اطراف نگاه کرد. به این فکر افتاد که چرا هنوز به کتابخانه برنگشته است. سرانجام میشد گفت در وضعیت مزخرفی است. مطمئناً همین حالا در بعضی زندگیها کنار استخر زیر نور خورشید لم داده است. زندگی هایی که در آنها موسیقی مینواخت یا توی وانی پر از آب گرم دراز کشیده بود که بوی استخو دوست میداد. یا بعد از سه بار بیرون رفتن با دوست پسرش حالا با او رابطه داشت. یا در ساحل مکزیک کتاب میخوان یا در رستوران معروف و گران قیمتی غذا میخورد که ستاری میشلین داشت. یا سلانه سلانه در خیابان‌های پاریس قدم میزد یا در روم گم شده بود یا با آرامش خیال به معبدی در نزدیکی کیوتو خیره شده بود یا آرامش پیده گرم رابطه ای موفق را به دور خود حس می‌کرد نورا در بیشتر زندگی‌ها دست کم از نظر فیزیکی جایی گرم و نرم بود با این حال در این زندگی داشت حسی جدید را تجربه می‌کرد شاید هم حسی قدیمی که مدت‌ها پیش دفن شده بود منظری یخشال به او یادآوری کرد که پیش از هر چیز است که روی یک سیاره زندگی می کند. متوجه شد تقریبا تمام کارهایی که در طول عمرش انجام داده، تمام چیزهایی که خریده یا برای رسیدن به آنها تلاش کرده و بعد به طریقی مصرفشان کرده، قدم به قدم از این درک دورش کرده اند که او و تمام انسانها فقط یکی از نه میلیون گونه زیستی روی زمین هستند. سرو در کتاب والدن نوشته بود اگر کسی در مسیر رویاهایش با اطمینان قدم بردارد و برای داشتن آن زندگی تلاش کند که در تصوراتش آورده در طول زندگی به موفقیتی غیر منتظره خواهد رسید. همچنین به این نتیجه رسیده بود که بخشی از این موفقیت حاصل تنهایی است. هرگز همراهی ندیدم که به اندازه تنهایی بتواند با انسان همراه شود. نورا هم در آن لحظه حسی مشترک با او داشت. با اینکه فقط یک ساعت از تنها شدنش می هرگز این حد از تنهایی را آن هم در دل طبیعتی خالی از سکنه حس نکرده بود. نورا در شبهایی که دچار افسردگی و تمایل به خودکشی میشد فکر میکرد مشکلش همان تنهایی است، اما دلیلش در واقع این بود که تنهاییش تنهایی حقیقی نبود، ذهن انسان وامانده از دیگران در شهری شلوغ میل زیادی به برقراری ارتباط دارد. چرا که فکر می کند انسانی هدف نهایی هند. اما در طبیعت محض یا آنطور که سرو خطابش میکرد داروی حیات بخش طبیعت تنهایی شکل دیگری به خود می گیرد. برای خودش به نوعی ارتباط تبدیل می شود. ارتباطی میان فرد و دنیا و میان فرد و خودش. یاد یکی از گفتگوهایش با اش افتاد. اشی قد بلند و بامزه و کمی معذب که همیشه دنبال کتاب موسیقی جدیدی برای گیتارش میگشت. مکالمه‌شان نه در مغازه، بلکه در بیمارستان و همان زمانی بود که مادر نورا مریض بود. کمی پس از اینکه متوجه شد سرطان رحم دارد، نیاز به جراحی پیدا کرد. نورا مادرش را پیش تمام متخصصان بیمارستان عمومی بدفورد برد و در همان چند هفته بیشتر از تمام عمرش دست مادرش را در دست گرفت. نورا در طول جراحی مادرش در غذاخوری بیمارستان ماند. اش هم که لباس سفید پزشکی به تن داشت و نورا را از مکالمات متعددشان در مغازه تئوری ریسمان شناخته بود، فهمید که نورا نگران است و جلو آمد تا به او سلام کند. اش جراح عمومی بیمارستان بود و نورا سوالهای زیادی درباره عملهایش از او پرسید. آن روز اش یک آپاندیس و یک مجرای صفرا را عمل کرده بود. نورا همچنین درباره زمان معمول بهبود بعد از عمل و زمان عمل جراحی از او پرسید و اش حسابی خیالش را راحت کرد. مدت زیادی درباره چیزهای مختلف با هم دیگر حرف زدند. چون گویی اش احساس کرده بود که نورا به این همصحبتی احتیاج دارد. چیزی هم در این باره گفت که نباید زیادی درباره علائم بیماری در گوگل جستجو کند. این باعث شد در شبکه های اجتماعی صحبت کنند. اش عقیده داشت هر چقدر مردم بیشتر در شبکه های اجتماعی با هم در ارتباط باشند جامعه تنهاتر می شود. گفت: واسه همینه که این روزها همه از همدیگه متنفرن. چون دور تا دورشون پر شده از دوستهایی که دوست نیستن. تا حالا اسم عدد دانبار رو شنیدی؟ بعد درباره یه مردی به نام راجر دانبار در دانشگاه اکسفورد برایش گفت که کشف کرده بود انسان ها جوری برنامه ریزی شده اند که فقط با 150 نفر آشنا باشند. چون در زمانهای گذشته جوامع شکارچی گردآورنده به طور معمول 150 نفر عضو داشتند. در حالی که زیر نور ضعیف قزوخوری بیمارستان نشسته بودند، اش به او گفته بود: مثلا توی کتاب روز رستاخیز اگه بخونیش متوجه میشی جمعیت معمول معمولی جامعه انگلیسی توی اون دوران 150 نفر بوده. جز توی کنت که صد نفر بوده. منم اهل کنتم. جنی داریم که باعث میشه ضد اجتماعی باشیم. نورا جواب داده بود: قبلا رفتم کند و متوجه این قضیه شده هم اما از نظریت خوشم میاد. این تعداد آدمی رو که گفتی میشه توی یک ساعت توی این استگرام دید. دقیقاً و این اصلا زندگی صالبی نیست. مغزمون نمیتونه چنین وضعی رو تحمل کنه. برای همینه که بیشتر از هر وقت دیگهی به ارتباط مستقیم با آدم ها تمایل داریم. دقیقاً برای همینه که من هیچ وقت کتابهای موسیقی آکورد آهنکای سایمون و گارفانکل رو آنلاین نمی‌خرم. این خاطر لبخندی به لب نورا آورد، اما بعد صدای بلند پاشیده شدن آب رو شنید و از عالم فکر و خیال به منظره قطبی اطرافش بازگشت. چند متر دورتر، میان جزیره خیرس‌ها و صخره کوچکی که نورا رویش ایستاده بود، یک یا چند صخره دیگر هم از آب بیرون زده بودند. چیزی داشت از بیان کفهای روی آب بیرون می آمد. چیزی سنگین و خیس و بزرگ که با سر و صدا روی صخره حرکت می کرد. نورا در حالی که سر تا پا می شلیک منور شد. اما بعد فهمید آن موجود خرس قطبی نیست. گراز دریایی بود. گراز دریایی چاق و قهوه و چروکیده روی یخ این پا و آن پا جلو آمد. بعد ایستاد و به نورا خیره ماند. حتی برای گراز دریایی هم زیادی پیر بود. گراز دریایی خجلتی حس نمی و می توانست تا ابد با نورا چشم در چشم بماند. اما نورا می ترسید. فقط دو چیز را درباره گرازهای دریایی می دانست. اول اینکه می توانند موجودات خشنی باشند و دوم اینکه هرگز برای مدتی طولانی تنها نمی مانند. احتمالاً تا چند لحظه دیگر گرازهای دریایی دیگری هم از آب بیرون می آمدند. نورا به این فکر کرد که منور را شلیک کند یا نه؟ گراز دریایی مثل بازتابی روح مانند از تصویر خودش همانجا ایستاد. اما آهسته آهسته پشت پرده ای از مه ناپدید شد. دقایق گذشتند. نورا هفت لایه لباس پوشیده بود. اما احساس می کرد پلکایش خشک شده اند و اگر اجازه میداد بسته می شدند و یخ می زدند. گهگاهی صدای بقیه را از دور دست می شنید. حتی برای مدتی همکارانش آنقدر به او نزدیک شدند که نورا توانست چند نفرشان را ببیند. مثل اشباهی در میان مه روی زمین خم شده بودند و با دستگاه هایی که نورا درکشان نمی کرد نمونه های یخی را بررسی می کردند. اما بعد دوباره ناپدید شدند. نورا یکی از شکلات های پروتئینی توی کولهش را خورد. به سردی و خوشگیه تافی بود. نگاهی به گوشیش انداخت. اما آنته نمی داد. خیلی ساکت بود. سکوت محیط باعث شد به فهمد که در هر جای دیگری در دنیا چقدر سر و صدا زیاد است. اینجا صداها معنا دارند. اگر صدایی بشنوی، باید به آن توجه کنی. در حالی که شکلاتش را می یکبار یک بار دیگر صدای پاشیده شدن آب را شنید. اما این بار از جهتی متفاوت. ترکیب مه و نور ضعیف محیط دیدن عامل صدا را سخت می کرد. اما گراز دریایی نبود نورا این حقیقت را زمانی فهمید که از بزرگی شبه مقابلش آگاه شد بزرگتر از گراز دریایی و بسیار بزرگتر از هر انسانی لحظهی بحرانی در وسط ناکجا آباد. نورا در دل سرما اجوا کرد لعنتی. ناامیدی از اینکه وقتی واقعاً به کتابخانه احتیاج داری، پیدایش نمی کنی. مه کنار رفت و خرس سفید بزرگی که روی دو پایی ایستاده بود پدیدار شد. روگی چهار پا فرود آمد و با سرعتی شگفت‌آور و قدم‌هایی سنگین و با وقار و ترسناک به سمت او به راه افتاد. لورا هیچ کاری نکرد. ذهنش از وحشت قفل کرده بود. مثل خاک منجمد زیر پایش کاملاً بی حرکت شده بود. لعنتی، لعنتی، لعنتی، لعنتی، لعنتی. لعنتی، لعنتی، لعنتی. سرانجام غریزه بقا در وجودش بکار افتاد و تپانچه منور را بالا آورد و شلیک کرد. منور مثل ستاری دنبالدار کوچکی شلیک شد. بعد در آب فرو رفت و مثل امید نورا در جا خاموش شد و از بین رفت. خرس هنوز داشت به سمت او می آمد. نورا روی زانوهایش افتاد و شروع کرد به کوبیدن ملاقه به قابلمه و با نهایت قدرتش فریاد زد. خیرس، خیرس، خیرس، خیرس لحظه ای شد. خیرس، خیرس، خیرس، خیرس دوباره به سمت او را افتاد. کوبیدن ملاقه و قابلمه فایده ای نداشت. خیرس نزدیک شده بود. نورا به این فکر افتاد که اصلا دستش به تفنگ میرسد یا نه. توفنگ اندکی دورتر روی یخ افتاده بود. نورا میتوانست پاهای پهن و مسلح به پنجه خیرس را ببیند که روی سنگهای برف پوش فشرده میشوند و پیش میآیند سرش را پایین انداخته و با چشمان سیاهش مستقیم به نورا خیره شده بود. نورا جیغ کشید. کتابخونه <تص> خونه، خانوم علمه. خواهش میکنم منو برگردونین، این زندگی اشتباهیه، واقعا، واقعا، واقعا اشتباهیه، منو برگردونین، ماجراجویی نمیخوام، کتابخونه کجاست، کتابخونه رو میخوام در نگاه خیره که هیچ حس تنفری نبود، نورا برایش فقط غذا بود، گوشت، این ترسی وحشتناک به جان نورا میانداخت قلبش مثل تبل تبل زنی که به نقطه اوج آهنگ نزدیک می تون تون می به آخر آهنگ رسیده بود. سرانجام در آن لحظه بود که حقیقتی شگفتابر بر نورا پدیدار شد. نمی‌خواست بمیرد. مشکل همین بود. در مقابل مرگ زندگی خیلی جذابتر به نظر می رسید. و اگر زندگیش جذاب به نظر می چطور می به کتاب نیمه شب برگردد؟ باید از زندگی ناامید می شود تا بتواند برگردد و کتاب دیگری را امتحان کند، نه اینکه از زندگی بترسد. مرگی خشن و نابودگر با چشمان سیاه یک خیرس به او خیره شده بود و به سمتش می آمد. در همان لحظه بود که نورا بهتر از هر زمان دیگری فهمید، آماده مردن نیست، در حالی که رو در روی خرسی قطبی ایستاده بود و با عتشی سیری ناپذیر برای زنده ماندن ملاقب و قابلمه را به هم می کوبید، این حقیقت که آماده مردن نیست، کم کم در ذهنش بزرگ و بزرگتر شد و جای ترس را گرفت، تونتر و محکمتر از قبل ملاقه و قابلمه را به هم کوبید. من نمیترسم من نمیترسم من نمیترسم من من نمیترسم من نمیترسم نمی خرس هم مثل گراز دریایی ایستاد و به او خیره شد نورا به تفنگ نگاهی انداخت بله زیادی دور بود تا زمانی که بتواند خود را به آن برساند و به بفهمد چطور باید چدی کند دیگر دیر شده اصلا شک داشت بتواند خرس قطبی را بکشد بنابراین به کوبیدن ملاقه ادامه داد. چشمانش را بست و همانطور که سر و صدا می کرد، در دل آرزو کرد که به کتابخانه برگردد. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد، خیرس داشت با سر به داخل آب برمیگشت. حتی بعد از رفتن خیرس هم به کوبیدن ملاقه و قابلمه ادامه داد. حدودن یک دقیقه بعد صدای انسانها را شنید که در میان مه نام او را صدا می زدند. جزیره شوکی شده بود اما نوع متفاوتی از شکه شدن نسبت به چیزی که بقیه سواران قایق موتوری فکر می کردند. به خاطر تجربه نزدیک به مرگش شکه نشده بود. از درک اینکه میخواهد می خواهد زنده بماند شکه شده بود. از کنار جزیرهای کوچک گذشتند که طبیعت نسبتا سرسبزی داشت. گلسنگ های سبز روی سخره ها جا خوش کرده بودند. پرنده ها، ماهی گیرک ها و طوطی های دریایی که دست دست دور یکدیگر جمع شده بودند، در برابر باد سرد قطبی ایستادگی می کردند. با وجود سختی شرایط، زندگی جریان داشت. لورا جرعه از قهوهی نوشید که هوگو از داخل فلاسکش به او داده بود. حتی با اینکه از پشت سه جفت دستکش لیوان را گرفته بود، هنوز هم دستهایش یخ بودند. عضوی از طبیعت بودند، یعنی بخشی از میل به حیات بودند. اگر مدت زیادی یک جا بمانی، یادت می رود دنیا تا چه اندازه وسیع است؟ از طول و عرض جغرافیایی سردر نمی آوری، درست همانطور که نمی توان درک درستی از وسعت روح هر انسان داشت. اما وقتی آن وسعت را حس کنی، وقتی چیزی آن را برایت فاش کند، امید خواهی نخواهی جوانه می زند. درست مثل گل سنگی که از صخره جدا نمی شود، جانانه به تو میچسبد و رهایت نمی کند، که دمای هوای سطح زمین در اسفالبارد با سرعتی دو برابر بقیه دنیا در حال گرم شدن بود تغییرات اقلیمی در اسفالبارد تقریبا از تمام دنیا سریعتر روخ میداد زنی که کلاه پشمی بنفشش را تا روی ابروهایش پایین کشیده بود درباره‌ی زمانی حرف میزد که گویا چرخیدن یک کوه یخ را در آب دیده بود چون آبهای گرم شده کوه یخ را از زیر زوب و آن را نامتعادل کرده و نتیجه این چرخش شده بود. مشکل دیگر این بود که خاک یخصده ی همیشگی سطح زمین داشت زوب و نرم میشد و نتیجه آن رانش زمین و بهمن بود که می توانست خانه های چوبی بزرگترین شهر اسفالبارد به نام لانگیربین را نابود کند. همچنین ممکن بود اجساد قبرستان محلی از زیر خاک بیرون بزنند. حضور در میان این دانشمندان حس خوبی داشت و الهام بخش بود. دانشمندانی که می بفهمند دقیقاً چه بلایی سر سیاره اشان می آید و با بررسی رخدادهای اقلیمی و یخچالی قصد داشتند از زمین محافظت و مردم را آگاه کنند. نورا بی توی سالن غزخوری کشتی اصلی تحقیقاتی نشسته بود. و همکارانش به خاطر مقابلش با خرس با او ابراز هم دردی می کردند. نورا نمی توانست با آنها بگوید که از این تقابل خوشحال شده. بنابراین معدبانه لبخند میزد و نهایت تلاشش را میکرد تا با کسی وارد گفتگو نشود. این زندگی خیلی خشن بود و هیچ سازشی نمی کرد. در لحظه دمای هوا هفته درجه زیر سفر بود و نورا تازه از خورده شدن توسط خرس قطبی نجات یافته بود. با این حال فکر می کرد شاید مشکل زندگی اصلیش تا حدودی سادگی و بیمذگیش بوده تا پیش از این همیشه تصور می کرد میان مایگی و ناامیدی از همه چیز در سرنوشتش بوده در حقیقت نورا همیشه احساس می کرد از نسل کسانی است که در تمام عمرشان حسرت خوردهاند و امیدهایشان نابود شده و بعد همین شکست ها در زندگی نسل های بعدشان باستا یافته است برای مثال اسم پدر بزرگ مادریش لورنزو کنته بود. لورنزو در دهی شست میلادی شهرش پولیا همان پاشنه زیبای چکمه ایتالیا را به مقصد لندن مدرن ترک کرد. لورنزو مثل بیشتر مردان شهر ساحلی متروکه بریندیسی جارش را با سفر در دریای آدریاتیک به خطر به بریتانیا مهاجرت کند و شغلی در شرکت آجورسازی لندن به دست بیاورد. لورنزو خام بود و فکر می کرد زندگی فوق ای خواهد ساخت. فکر می کرد تمام روز آجر می سازد و بعد شبها با خانه های گروه بیتلز دمخور می شود و دست در دست جین شریمتون یا ماریان فیسفول در خیابان کارنابی قدم می زند. در واقع تنها مشکل ماجرا اینجا بود که کارخانه ی سازی لندن با اینکه اسم لندن را بر خود داشت اصلا توی لندن نبود. و حدوداً شهست مایلی شمال لندن در شهر بیتفورد قرار داشت. بیتفورد هم با اینکه که های خود را داشت، به آن اندازه که لورنزو می‌خواست مدرن نبود. در هر صورت لورنزو از رؤیاهایش گذشت و همانجا مستقر شد. شغلش شکوه و وقار خاصی نداشت، اما دست کم درآمد داشت. لورنزو با زنی انگلیسی به نام پاتریشا براون ازدواج کرده. پاتریشا هم به نوبه خود داشت با ناامیدی‌های زندگی کنار می‌آمد چرا که رویای بازیگر شدن را با تئاتر روزانه زندگی زن خانهدار روستایی معاوضه کرده بود مهارت‌های آشپزی‌اش هم همیشه زیر سایه دست بخت مادر مادرشوهر پولیایی مرحومش و اسپاگتی افسانه‌ای‌اش بود که به عقیده لورنزو هرگز هیچ غذایی نمی‌توانست از آن خوشمزهتر بشود کمتر از یک سال پس از ازدواج دختردار شدند مادر نورا و اسمش را دونا گذاشتند. دونا در سن رشد همیشه دعوا و بحث و جدل پدر و مادرش را میدید و در نتیجه به این باور رسیده بود که ازدواج نه تنها اجتناب اجتناب‌ناپذیر، بلکه به طرز ناگوریزی فلاکت بار و سخت است. دونا در شرکتی حقوقی منشی شد و پس از آن در شورای شهر بیتفورد شغل کارشناس روابط عمومی را به دست آورد. اما بعد اتفاقی برایش افتاد که هرگز درباره‌اش حرفی زده نشد. نست به نورا چیزی نگفتند. دچار یک جور از همپاشیدگی ذهنی شده بود که بعدا هم تکرار شد و این باعث شد خانه نشین بشود و با اینکه بعدها بهتر شد دیگر هرگز به سر کار برنگشت. مادرش مثل ورزشکاران مسابقات امدادی که چوب امدادیشان را به نفر بعد میدهند این میراث نامرئی از جنس شکست و ناامیدی را به او منتقل کرده و نورا تا مدت آن را نگه داشته بود شاید به همین خاطر هم از خیلی چیزها دست کشیده بود چون در ژرنش اینطور ثبت شده بود که باید شکست بخورد در حالی که کشتی در آبهای سرد قطبی پیش می‌رفت و پرنده‌ها به گفته اینگرید اسمشان کاکایی سخرنشین پاسیاه بود بالای سرشان پرواز می‌کردند نورا به این موضوعات فکر می‌کرد در هر دو سمت خانواده نورا این عقیده ناگفته برقرار بود که زندگی قرار است آدم را بدبخت کند. حتی جف پدر نورا هم جوری زندگی کرده بود که انگار از حیاتش هیچ هدفی نداشت. وقتی جف دو ساله بود پدرش بر اثر سکته قلبی درگذشت و در نتیجه جف در دوران رشد فقط مادرش را داشت. اما مرگ پدرش جزو خاطراتی نبود که از اوایل عمرش به یاد بیاورد. مادر بزرگ پدری نورا در روستاهای ایرلند به دنیا آمده بود. اما پس از مهاجرت به انگلیس نظافتچی مدرسه شد و با درآمدش به زحمت میتوانست حزینه خرد و خوراکشان را تأمین کند، چه برسد به کارهایی که تفریح محسوب شوند. جف در اوایل کودکی مورد ظلم بقیه بچه ها قرار میگرفت. اما بعد بزرگ و درشت تیکل شد و توانست قلدرها را سر جایشان بنشاند. تلاش زیادی کرد و خودش را در فوتبال و پرتاب وزنه و به خصوص راگبی به اثبات رساند. برای تیم جوانان بتفورد بلوز بازی کرد و بهترین بازیکنشان شد. حتی می توانست در لیگ برتر به جایی برسد اما بعد ربات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست بازی کند. سپس مربی ورزش مدرسه شد و در نهان به تمام دنیا نفرت ورزید. همیشه آرزوی سفر کردن داشت. اما برای محقق کردن آرزویش کاری نمیکرده، جز اینکه در مجله نشال جگرافیک عضو شود و گهگاهی سفری تفریحی به جزایر سیکلت برود. نورا او را به یاد میآورد که در ناکسوس هنگام غروب خورشید از معبد آپولو عکس می گرفت. اما شاید همه زندگی ها همین بودند. شاید حتی آن زندگی که کاملا پر هیجان به نظر می یا آن زندگی که همه فکر می ارزشمند است در نهایت شبیه همدیگر باشند ترکیبی بزرگ از ناامیدی و یک نواختی و درد و زجر و رقابت با چاشنی شگفتی و زیبایی شاید این تنها چیز معنادار بود اینکه مردم دنیا خودشان را ببینند شاید چیزی که موجب غم و ناراحتی پدر و مادر و برادرش میشد در واقع نه نرسیدن به موفقیت بلکه انتظارهای اشتباهی بود که از ابتدا داشتند راستش نورا خیلی درباره این چیزها نمیدانست، اما وقتی سوار آن کشتی بود چیزی را فهمید دریافت که پدر و مادرش را بیشتر از هر زمان دیگری در عمرش دوست دارد و دقیقا در همان لحظه آنها را کاملا بخشید